سلام به همراه های همیشگی کانال هزار افسان خیلی خوشحالم که با یک کتاب دیگه در کنار شما هستن سپاسگزارم از اینکه وقت می‌ذارید و داستان‌های ای رو با صدای بنده دنبال می‌کنید امیدوارم از شنیدن داستان‌های افسانهای این کتاب هم لذت ببرید و در کنار عزیزانتون لحظات خوب و خوشی رو سپری کنید داستان سرزمینی که هرگز کسی در آنجا نمیمیرد یه روز جوانی با خودش گفت از این موضوع که همه باید بمیرن خوشم نمیاد. میخوام برم به سرزمینی که هیچ که اونجا نمیره. از پدر و مادر و اموها و اموزادهاش خداحافظی کرد و راه افتاد. روزها رفت و ماهها رفت و به هر کسی که میرسید ازش میپرسید آیا میتونم سرزمینی رو پیدا کنم که هرگز کسی اونجا نمرده باشه اما هیچ کس اطلاعی از اون سرزمین نداشت یه روز به پیرمردی باریش سفید بلند که تا روی سینش میرسید برخورد کرد پیرمرد گاری پر از سنگی رو با خودش میکشوند جوون ازش پرسید میتونید جایی رو من نشون بدید که هرگز هیچ کسی اونجا نمرده باشه؟ پیرمرد جواب داد؟ نمیخوای بمیری؟ پس با من باش تا زمانی که تمام سنگهای اون کوه رو با گاریم جابجا جا نکردم؟ نمیمیری. جوان پرسید: چه مدت طول میکشه تا اون کوه رو صاف کنی؟ پیرمرد جواب داد؟ صد سال طول میکشه دوباره جوان گفت و بعدش باید بمیریم؟ پیرمرد گفت بله جوان هم در جوای پیرمرد گفت نه اینجا جای من نیست. میخوام برم جایی که هیچ وقت مرگ به اونجا راهی نداشته باشه. جوان از پیرمرد خداحافظی کرد و رفت. رفت و رفت تا به جنگل بیپایانی رسید. اونجا پیره مرد دیگه ای رو دید که با قیچی باغبونیش شاخه ها رو میبارید. جوون ازش پرسید. میشه لطفاً کمکم کنید. به من بگید که کجاست اون سرزمینی که هیچکس تا به حال اونجا نمرده پیرمردم مردم بهش گفت. با من بمون. تا زمانی که تمام درختای این جنگل رو با قیچیم نباریده باشم نمیمیریم. جوان دوباره پرسید چند وقت طول میکشه؟ خب دیویست سال و بعدش باید بمیریم. پیرمرد گفت برات کافی نیست؟ و جوان دوباره گفت نه اینجا جای من نیست. دنبال جایی می گردم که هیچ وقت هیچ کسی اونجا نمیره. در این بار هم از پیرمرد خدا خداحافظی کرد و رفت. بعد از چند ماه پیاده روی، جوون به ساحل یه دریا رسید. پیرمردی رو دید که اونجا کنار ساحل نشسته و اردکی رو هم دید که از دریا آب میخوره و سرش رو توی آب دریا فرو میکنه از ماهیاش تغذیه میکنه. جوون جلو رفت و پیرمرد گفت: لطفاً جایی رو من نشون بدید که هرگز هیچ کسی اونجا نمرده باشه. پیرمرد به جوون گفت: اگه از مرد میترسی پیش من بمون نگاه کن تا زمانی که این اردک با دریا رو خشک نکنه نمی میری جوون پرسید: به نظرتون چند سال طول میکشه پیرمرد جواب داد: تقریبا سیصد سال جوون دوباره پرسید: بعدش باید بمییم؟ پیرمردم گفت. مگه تو بیشتر از این میخوای زنده بمونی؟ مگه چند سال میخوایی زندگی کنی؟ و جوان دوباره جواب داد نه اینجا جای من نیست من باید برم یه جایی که هرگز هیچ کسی اونجا نمیره و بعد هم دوباره به راه افتاد شب شده بود جوان قصه ما به یه قصر باشکوه رسید در زد پیرمرد مرد دربون قصر در باز کرد. بهش گفت چی میخوای؟ جوان هم گفت دنبال جایی میگردم که هرگز از مرگ اونجا هیچ خبری نباشه. پیرمرد مرد گفت آفرین خوب جایی اومدی. اینجا همون جاییه که هرگز هیچ کسی نمیمیره. تا با من هستی مطمئن باش که هیچ فقط نمیمیری. جوان گفت براخره رسیدم. خیلی گشنمه. اینجا درست همون جاییه که من دنبالش میگشتم. شما خوشحالید که من پیش شما هستم؟ دوست دارید که من اینجا بمونم؟ پیرمردم جواب داد. معلومه که خوشحالم. تو همدم خوبی برای من میشید. جوان با اون پیرمرد توی قصر ساکن شد. زندگی خوبی و زرند. و سالهایی که هیچ کسی متوجهشون نبود همینجور دنبال همدیگه میگذشتم سالها و سالها گذشت یه روز جوون به پیرمرد گفت خیلی عجیبه من اینجا با شما کاملا راحتم اما دوست دارم برم و وضعیت خونواده و اقوامم رو از نزدیک ببینم پیرمرد گفت کدوم اقوامت رو حالا دیگه سالها گذشته حالا اونا مردن. خب نمیدونم چی باید بهتون بگم. اما من دوست دارم برم و سرزمین خودم رو ببینم. از کجا معلوم شاید بچه های اقوام و دوستام هنوز زنده باشن. پیرمرد گفت: اگه همچین فکری تو سرته، به تو یاد میدم که چیکار کنی. برو به استبل، اسب سفید منو بردار و سوار اون شو. اما یادت باشه که به هیچ وجه نباید از این اسب پیادهشی چون اگه پیادهشی فورم می میری خیالتون راحت باشه من هرگز پیاده نمیشم از مرگ خیلی می ترسم جوون به استاب رفت و اسب سفید رو بیرون آورد روی زین اسب نشست و مثل باد رفت به جایی رسید که قبلا پیرمرد رو با اردک اونجا دیده بود اونجا که قبلا دریا بود حالا دیگه هیچ دریایی وجود نداشت یه مشت استخون دید پیرمرد بود با خودش گفت نگاه کن چه خوب کاری کردم که راهم پیش گرفتم و رفتم اگه اینجا میموندم منم حالا مرده بودم و دوباره به راهش ادامه داد به جنگلی رسید که پیرمرد درخت های جنگل رو داشت قطع کرد. حالا دیگه اونجا برهنه به رهنه شده بود. حتی یه درخت هم اونجا دیگه وجود نداشت. جوان با خودش گفت: هاست که اون پیرمرد مرده و دوباره به راه خودش ادامه داد. به همون کوه عظیمی رسید که پیرمرد داشت سنگای اون رو جابجا جا کرد. حالا دیگه اونجا هیچ خبری از اون کوه نبود. یه دشت صاف و سرسبز بود. با خودش گفت: اون پیرمرد تاره هفت تا کفن پوسونده. و دوباره راه سرزمین خودش رو در پیش گرفت. بعد از مدت‌ها به شهر و دیار خودش رسید. اما همه چیز عوض شده بود. دیگه نه کسی رو می‌شناخت. و نه کوچه های خودشون رو و نه خونش رو حتی از خیابونشون هم هیچ خبری نبود از اقوام خودش پرس جو کرد اما هیچکس حتی اسم اونها را هم نشنیده بود جوون خیلی نراحت شد با خودش گفت بهتر فورم برگردم سر رو چرخوند و راه بازگشت خودش رو در پیش گرفت هنوز به نیمه های راه نرسیده بود که با مرد گاریچی برخورد کرد. مرد گاریچی با گاری پر از کفش های توی زمین فرو رفته بود. گاریچی گفت ارباب جوون یه لطفی در حق من میکنید؟ یه لحظه از از پیادشید و برای بلند کردن این چرخ که توی زمین فرو رفته به من کمک کنید. جوون گفت من عجله دارم نمیتونم از این شم. مرد گاریچی دوباره گفت این لطفو در حق من بکنید می‌بینید که من تنهام هوام داره کم کم تاریک میشه جوون تحت تاثیر این حرفها قرار گرفت پیاده شد هنوز یه پاش روی رکاب و یک پاش روی زمین بود که گاریچی بازوی جوون رو محکم گرفت و گفت آها بالاخره گرفتمت میدونی من کیم من مرگم این کفش‌های فرسوده داخل گاری رو می‌بینی؟ کفش‌هایی که همشون رو به خاطر اینکه دنبال تو گشتم کهنه و فرسوده شدن. ولی حالا دیگه تو چنگ منی. یادت باشه همه باید اسیر دستای من بشن. هیچ راه چاره‌ای نیست. و خلاصه نوبت مرگ جوون بیچاره هم فرارسید.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 نشانی وبلاگ ما m e h r a مهران